بسم الله الرحمن الرحیم بنامه خداونده به اندازه مهربان نهایت در باره از تو در مال مالهای غنیمت می پسن. بگو مالهای غنیمت از آن خدا و رسول اوست بنابر آن از خدا بترسید روابط ذات البینی خیش را اصلاح کنید و خدا و رسول او را اطاعت نمایید اگر ایمان دارید بیگمان مؤمنان کسانی اند که چون خداوند یاد شود و آیات او برایشان خوانده شود، دلهایشان سرشار از ترس خدا می شود. این آیت ها ایمانشان را نیرومندتر منتر می سازد و بر پروردگار خود توکل می آنها آنهایی که نماز را به تمام و کمال برپا می دارند و از آنچه به ایشان روزی دادیم خرج می کنند. هم ایشان مسلمانی را برای ایشان در نزد پروردگارشان در جارت و آمرزشی و روزی کریمانه ای چون که پروردگارا ترا از خانه تو به حق بیرون کرد بچی گروهی از مسلمانان از آن واقعا ناخوشند بودند تو در باره حقیقتی که آشکارا شده بود مجادله می کردن تو گویی که ایشان به سوی مرگ سوق داده می شدن و ایشان نینی و یادار زمانی را که خداوند به شما وعده کرد که یکی از دو گروه دشمن از آن شماست شما آرزو کردید که گروه بدون صلاح از آن شما گردد اما خدا میخواست تا حق را به سخنان خیش بر ثبوت رساند و ریشه کفار را بکند تا هر را به سهود رساند و باطل را نابود کند هرچند مجرمان نخوشنود شود. بیا دارید که چون از پروردگار خود کمک خواستید پس او درخواست شما را پذیرفت و گفت من شما را به یک هزار فرشته راید شده کمک میکنم. خداوند این کمک را نگردانید مگر مجدهید و تا به این وسیلت دلهای شما آرام گیرد و پیروزی نیست مگر از به خدا بیگمان خداوند صاحب قدرت مونی و با حکمت است و یاد دارید که چگونه پینکی را و حیث آرام میشه از جانب خیش و شما چی رسد؟ و بل شما بارانی از آسمان فرو آورد تا شما را به آن پاک یعنی بانشاب سازد، و آلودگی شیطان یعنی کسالت را از شما بزوداید، تا دلهای شما را به نور امید پیوست سازد، و شما را با آن ثابت قدم بدارد، بیادار که پرودگارت به فرشتگان وحیه کرد تا با شما بگویند که من با شمایم پس مؤمنان را ثبات بخشید به زودی در دل کفار ترس و وحشت می اسکنم. پس شما بر بالای گردن‌هایشان بزنید و بر هر سر انگوشت از دستهایشان بزنید یعنی سر و دستشان را با شمشیر قطع کنید این از است که ایشان با خدا و پیامبر او مخالفت میورزند و هر کسی که با خداوند و پیامبر او مخالفت ورزد پس بیگمان خداوند سخت اضاف کننده است این را بچشید بیگمان با کافران عذاب آتش دوزخ نیز در نظر گرفته شده است ای مؤمنان انگامی که با کفار در میدان جنگ روبرو شدید پس هرگز به ایشان پشت مگردانید اگر کسی در چنین روزی جز برای سه همگیری در گوشه دیگری از جنگ یا پیوستن به قطعه دیگری از مجاهدان، به دشمن پشت گشتان پس بیگمان به خشم از خدا بازگشته است و جای اون دوزخ است و چی بد پناگاهی؟ این شما نبودید که ایشان را کشتید بلکه خداوند بود که ایشان را کشت و تو نزدی وقتی که با چشمانشان خواب زدی، مگر این خداوند بود که زد تا مسلمانان را با آن از جانب خیش آزمایش کند آزمایش نیکو بگون خداوند شنوا و داناست این کار است که شد و بیشک خداوند سست کننده فریب کافران است اگر به جستجوی فیصله بیدید بس بیگمان بین شما فیصله شد اکنون اگر از مخالفت خودداری ورزید این برای شما بهتر است ولی اگر به با جنگ بازگردید ما هم باز می و قوای شما هرگز شما را در دفاع بین ساختن نمی تواند اگر چی بیشتر هم باشند و و خداوند با مسلمانان است ی خدا و رسول او را فرمان برید و از او رو مگردانید در حالی که فرمان او را میشنوید. مانند کسانی نباشید که میگویند میشنوید اما گوش فرا نمیدهند. حتی که به ترین چار پایان در نزد فراوان آنهایی هم که کر و گنگ هستند آنهایی که درک ندارند. و اگر خداوند در ایشان خیری را میدانست دانیست یقیناً آنها را می شنواند. اگر ایشان را بشنواند واقعاً ایشان روی برمی تابند در حالی که از پذیرفتن حق اراز می کند مؤمنان امر خدا و رسول را اجابت کنید در حالی که شما را به چیز را می که شما را زنده می سازد و بدانید که حقا خداوند در بین انسان و دل او حایل می شود و حقیقت این است که به او حشر می و از به بترسید که تنها به ستمکاران شما نمی رسد و بدانید که بیوهان خداوند سخت عذاب کننده است و هنگامی را به خاطر آورید که در زمین دسته کوچک و ناتوانی بودید از این میترسیدید که مردم شما را برو باید. پس خدا شما را جای داد و یاری خود ایت کرد و شما را چیزهای پاکیزه روزی داد تا تا باشد که سپاس گذاشد ای مؤمنان با خدا و رسول خیانت مکنید و هم به امانتهای خیش دیده دا و دانسته خیانت موزید و بدانید که دارایی های شما و اولاد شما وسیله آزمایشی اند و بیشک خداوند است که نزد او مزدی بزرگ می باشد ای مؤمنان اگر شما از خدا به برای شما فرقانی فراهم می گرداند که با آن میان حق و باطل فرق کنید و گناهان شما را شما می زداید و, و خداوند صاحب فضل بزرگ است و بیا دار وقتی را که کفار به تو دسیسه میچیدن تا تو را مهنگوز یا تو را یا تو از مکه معظمه بیرون کنن ایشان چاره میاندیشیدن یعنی تدبیر میکردن و خداوند نیست تدبیر میکرد و خداوند بهترین تدبیر کنندگان است و چون آیات ما و ایشان خوانده شود میگویند ما بیگمان این را قبلن شمیده اگر ما میخواستیم کلمات مثل آن را میگفتیم این نیست مگر اپسانه های پیشیان با وقتی وقت را که ایشان گفتن خدایا همانو اگر این حق هست از جانب تو پس بر ما از آسمان سنگ بباران یا بر ما عذاب درناک بفرست خداوند هرگز ایشان را عذاب نمی کند تا زمانی که تو در میان ایشان باشی و خداوان هرگز ایشان را عذاب نمی کند تا ایشان آمرزش بخواهند و چرا خداوند ایشان را عذاب نکند در حالی که از مسجد حرام مردم را باز می دارند و ایشان سرپرست آن هم نیستند نیست سرپرست مسجد حرام مگر پرهیزگاران اما بیشتر ایشان نمی دانند نماز ایشان در برابر خانه کعبه غیر از ستیر زدن و کفزدن چیزی دیگری نبود پس عذاب را و سبب کافر بودنی خیش بچشید بگمان آنهایی که کافرند دارایی خود را خرچ میکنند تا مردم را از راه خدا دارند ایشان مال خود را هم مصرف خواهند کرد و سپس بر ایشان مایه حسرت خواهد بود و بعد از آن مغلوب میگردند و کسانی که کافر شدن سوی دوزخ هر شده شد. تا خداوند مردم ناپاک را از مردم پاکیزه جدا سازد و پاکان بر بعضی دیگر روی هم بگذارد و همه ایشان را انواش تسازد و آنگاه و دوزه خفت هم ایشانم زیان کار بکاتران بگو اگر او هم از کفر خیش بازستند گذشته برایشان ایشان آمرزیده می شود ولی اگر به کفر خیش اصرار ورزند و به با جنگ بازگردند سرنوشت پیشینیان در باره جاری شده نیست و ایشان به جنگ ادامه دهید تا فتنه باقی نماند و دین کاملا از آن خدا باشد اگر ایشان از اعمال نیکوهیده خیش دست کشند پس خداوند و آنچه می کنند بیناست و اگر از قبول حق رو بگردانند پس بدانید که بیگمان خداوند کارسازی شماست چه خوب کارسازی و چه خوب مددگاری و بدانید آنچه را با قیمت گرفتید و یک بر پنجم حصه آن از آن خدا رسول خیشاوندان یتیمان مسکینان و مسافران است اگر با خدا و آنچه در روز تمایز حق از باطل روز روی و روی دو قدرت برای بنده خود نازل گردانید ایمان آوردهید و خداوند بر هر چیز تواناست باید دارید هنگامی را که شما به طرف نزدیکتر مدینه بودید و ایشان به طرف دوتر و کاروان پایانتر شما و اگر شما با یک دیگر وعده هم برای رو در می کردید در ایفای وعده خود خلاف می وزیدید ولی با هم رو برو شدید تا خداوند کاری را که شدنی بود به انجام رساند تا کسی که هلاک می شود به دلیل روشنی هلاک شود و کسی هم که زنده می ماند به دلیل روشنی زنده بیماند و بیگمان خداوند و داناست و بیادار وقتی را که خداوند در خواب ایشان را به تو کم نشان دار اگر ایشان را به شما بسیار می بود، می سست می شدید و در کار جهاد منازعه می کردید ولی خداوند شما را حفظ کرد و خدا خداوند برازی درونی سینه ها آگاست بیا دارید وقتی را که به ایشان روبرو شدید آنها را به چشم شما کم نشان داد و شما را در چشمهای ایشان کم جلوان بود تا خداوند کاری را شدنی بود به انجام رساند و همه امور به خداوند اجابه شود ای مؤمنان چون با گروهی برای جنگ روبرو شدید پس صبات ورزید و خداوند را زیاد یاد کنید تا با شکر استگاه شد. و خداوند و پیانبری او را فرمان بری و باید دیگر منازیم بکنید تا مبادا سست شدید و نیروی مقومت شما از بین برود و باید شکیبایی ورزی، بیگمان خداوند با شکیبایان است و مانند کسانی ما که با سرکشی و خودنمایی به مردم از خانه های خود بیرون شدند و مردم را از راه خداوند باز می داشتند و خداوند به آنچه می کنند فراگیرنده است و بیا دارید وقت را که شیطان کردار گناه آلودشان را به آنها زیبا جلوه داد و گفت امروز به شما هیچ کسی از مردم غالب نمی شود و من بگمان به کنار شمایم اما همین که آن دو گروه با هم روبرو شدند با عقب برگشت و گفت بی من از شما بیزارم یقینا من چیزی را می بینم که شما نمی بینید. گمان من از خدا ترسم و خروان سخت عذاب کنید دست بیاد ور وقتی را که منافقان و آنانی که در دنهایشان بیماری است می‌گفتند اینها را دینشان فریب داده است کسی که با خدا توکل کنند پس بگمون خداوند صاحب قدرت مونی و با حکمت است و اگر فرشتگان رو ببینی به هنگامی که روح کافران را رو میگیرند و به روحا و پشتهایشان میزنند در حالی که به ایشان میگوین عذاب آتش سوزان را بچشید این سبب اعمال است که دستهای شما پیش فرستاده است و خداوند هرگز به بندگان ستمگار نیست درست مانند روش فرعونیان و کسانی که پیش از ایشان بودند از آیات خداوند انکار کردند پس خداوند ایشان را به دناهانشان گرفت بیگمان خداوند قوی و سخت عذاب کننده است این سبب است که خداوند هرگز نعمتی را که به قومی ارزانی کند تغییر نمی دهد تا آنکه ایشان چیزی را که در نهاد خیش دارند تغییر ندهند و حق که خداوند شینوا و داناست درست مانند روش فرعونیان و کسانی که پیش از ایشان بودند آیات پروردگار خیش را تکذیب کردند پس ایشان را در اثر گناهانشان شان هلاک کردیم و قوم فرعون را غرق ساختیم و همه ستمگار بودند بیگمان بدترین جنبندگان در نزد خداوند کسانی که کافر شدند پس ایشان ایمان نمی آورند کسانی که از آنها عهد گرفتی سپس در هر بار عهد خود را می شکستند و ایشان از خدا نمی ترسند اگر ایشان را در جنگ یافتی پس و از بین بردن ایشان کسانی را که در عقبشان قرار دارند متفریق بساز تا باشد که پند بگیرند اگر از گروهی بیم خیانت داشتی، عادلانه پیمانشان را به سویشان به یعنی نتزه پیمان را به گونه یک اعلام کن، خداوند هرگز خیانتکاران را دوست ندارد. کافران نپندارند که از مسلمانان پیش دستی کردند. ایشان هرگز مسلمانان را عاجز ساخته نمیتوانند. و در برابر دشمنان تا آنجا که میتوانید از نیرو آماده سازی و هم از های کمن تا بدین وسیله دشمنان خدا و دشمنان خویش را بتستانید و دیگران غیر از آنها یعنی آن دشمنان پنهانی را که ایشان را نمیشناسید اما خداوند ایشان را میشناسد و هر آنچه را در راه خدا می میکنید با شما باز داده میشوند و شما مورد ستم واقع نمیشوند اما اگر به صلح تمایل نشان دهند، تو نیز به صلح بگیراید و بر خداوند و نما ما، حقاک خداوند هم اوست شنو و دانا. اگر بخواهند تا ترا فریب دهند، بگو ما خدا ترا بسنده است، هم اوست که تراف به مدد خیش و به مؤمنان تعیید کرد. و دل شان را به هم الفت داد اگر تو تمام آنچه را که در روی زمین است هم خرج می کردی دلهای شان را به هم الفت داده نمی توانیستی مگر خداوند بین شان الفت داد حقا که هم اوست صاحب قدرت ملی و با حکمت ای پیانبر برای تو خدا و کسانی از مسلمانان که تو را پیروی می کنند وزنده است ای پانبر مؤمنان را با جنگ برانگیز اگر از شما بیست تن صابر و باثبات باشند بر 200 سد غالب می شون. اگر از شما صد نفر باشند بر هزار نفر از کافران غالب می گردند به این سبب که ایشان مردمانی ام که نمی فهمند خداوند بار گران را از دوش شما سحک ساخت و دانسته بود که در شما است پس اگر از شما ست تن ثبوت باشد بر دو تن غالب می شود و اگر از شما هزار تن باشد بر دو هزار تن اراده خداوند غالب می شود و خداوند با شکیبایان است برای پیامبری سزاوار نیست که ایرانی جنگی داشته باشد تا در زمین نیرومن گردد شما مال و دنیا را می و خدا آخرت را می خواهد و خدا وان صاحب قدرت منی و با حکمت است. اگر حکم سابقی از جانب خدا نمی یعنی که بدون بلا امت را جزا نمی دهد و شما در برابر جزیهی که گرفتید عذابش دیگر می رسید. پس از آنچه به غنیمت گرفتید، حلال وار و پاکیزت بخورید و از خدا بترسید حتی که خداوند آمرزندهی مهربان است در این پایان را، به آنانی که در دست شما سیرند بگو اگر خداوند در دلهای شما خیر را دریابد در برابر آنچه از شما گرفته شده، چیزهای بیتر برای شما میدهد و شما را می آمرزد و خداوند آمرزندهی مهربان است اما اگر ایشان اراده خیانت را با تو داشته باشند پس بیگمان ایشان پیش از این با خدا هم خیانت کردن پس شما را بر ایشان مسلح ساخت و خدا وندانا و با حکمت است بیگمان آنانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و در راه خدا و مال و جان خود جهاد نمودند و آنانی که به مهاجرین پناه و کمک دادند اینها دوستان یعنی کارساز دیگرند و کسانی که ایمان آوردند و هجرت نکردند شما هیچ و ورایت یعنی مسئولیت در برابر آنها ندارید تا ایشان نیز هجرت کنند و اگر در امور دینی از شما مدد جویند پس بر شما ستا تا به ایشان کمک کنید مگر بر ضد مردمی که بین شما و بین ایشان پیمانیست است اقدام نوارزید و خداوند و آنچه می کنید پیناست و کافران دوست یعنی کارساز یک دیگرند اگر شما این کار را نکنید یعنی پیوستگی خود را با ایک حفظ نکنید در زمین آشوب و فساد بزرگی و می شود و آنانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و در راه خدا جهاد ورزیدند و آنانی که با مهاجران پناه و قومت دادند همانهایان واقعی برای ایشان آمرزش و روزی سخاوت مندانه است و آناندی که بعدا ایمان آوردن و هجرت نمودن و با شما یک جا جهاد کردند پس ایشان نیز از شمایم و خویشاوندان در احکام خدا بعضی بر دیگر بیگمان بیگومان خداوند و هر چیز داناست